استراتژی شرکت بر خودکفایی و یک پارچگی عمودی از استخراج مواد اولیه تا تولید محصول نهایی متمرکز است که پاسخی به تحریم‌ها و نیازهای صنعتی حساس است. این مجموعه به های نزهور انرژی، نظیر تجدیدپذیرها و نیروگاهداری نیز وارد شده است. تسهیلات مالی شرکت قابل توجه است. عمدتاً از بانک سپه با نقش محدود بانک تجارت. ها قابل توجه و فاﺑد اعتبارات اسنادی است. مطالبات تسهیلات نیاز به مدیریت دقیق تر دارد. شرکت زیر مجموعه، معدن ایرانیان، تسهیلات و زمان های محدودی از بانک توسعه صادرات دارد با نقش ناچیز بانک تجارت و مطالبات قابل توجه. شرکت شتابان انرژی نوین افق و دیگر نهادهای مرتبط بدون اطلاعات بانکی هستند.